حافظه برای عتیق کردن عشق نیست برای زنده نگه داشتن عشق است اگر پرنده را به قفس بیندازی مثل این است که پرنده را قاب گرفته باشی و پرنده قاب گرفته فقط تصور باطلی از پرنده است عشق در قاب یادها پرنده است در قفص منت آب و دانه بر سر او مگذار و امنیت و رفاه را به رخ او نکش عشق طالب حضور است و پرواز نه امنیت و قاب اینطور شد تا به انقلاب رسیدیم به سردویدنها از این خانه به آن خانه کوچ کردنها در انتهای رودبارک، در دل جنگل گهگاه پنهان شدن و باز به سردویدنها بچه ها بعد از آن یکی که نیامده رفت یکی یکی آمدند و ماندند یک پسر یک دختر که هنوز در سبد حسیری گیلکی راه می بردیمش. تو می پرسی، جای عشق کجاست؟ و من میمانم جای عشق، جای عشق کجاست گیل مرد کوچکن اندام شکستنی نگاه کن که عجب جنجالیست واقعا نان نیروی شگفت عشق را مبادا مغلوب کند عشق کو اتران شاخه های نرگس مرتوب کو پی اتربی بی رنگ پراکنده در فضا میگردی پس میخواهی پی چه چیز بگردم؟ چیشه خالیش را که آنجا بالای تاخچه خاطره میبینم گل خشک شدهش را هم در گلدان خاطره اما مگر قرار ما این نبود که عشق را خاطره نکنیم مگر بر این نکته تفاهم نکردیم که خاطره ویران کردن حال است و ویران کردن حال از میان بردن تنها بخش کاملا زنده و پرخون زندگی عشق مگر تو نمیگفتی؟ و میگویم هنوز و همیشه درست است امروز بهتر از همیشه معنای حرفت را حس میکنم و حس حرفت را اگر دوست داشتن به یک مجموعه خاطره مجرد تبدیل شود دیگر این خاطرات از جنس عشق و دوست داشتن نیستند و از آنجا که انسان محتاج دوست داشتن است و دوست داشته شدن در این حال علارقم زیبایی خاطرات انسان محتاج به دوست داشتنی نو، دوست داشتنی دیگر نیازمند می شود و پناه می برد و این عشق نخستین را ویران می کند بیان که شبه عشق دوم بتواند قطری از خلوص را در خود داشته باشد و عمیق باشد و با معنا باشد و اطر و رنگ و شفافی و جلای عشق نخستین یا تنها عشق را داشته باشد یک بار، یک بار و فقط یک بار می توان آشق شد آشق زن، آشق مرد، آشق اندیشه، آشق وطن، آشق خدا، آشق عشق یک بار، فقط یک بار بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست شوق تصرف جای عشق به انسان را میگیرد. گیرد خودنمایی جای عشق به وطن را ریا جای عشق به خدا را یک بار یک بار و فقط یک بار در عشق حرفی شدن ممکن نیست مگر آنکه به بدکار ترین ریاکار تنپرست بی اندیشه تبدیل شده باشیم تو تمام این حرف ها را تو گفته ای؟ بله من گفتم اما آرام باش آرام فاصله ارتفاع صدا را معین می کند میدانم. دیگر مدت هاست که می دانم. اما عشق زمانی به خاطرات مجرد تبدیل نمی شود که عشق باقی مانده باشد. فاصله زمانی ارتفاع صدا را معین می کند که صدا، صدای درد، صدای خشم، صدای حس به خطر افتادن چیزی عزیز نباشد. بگو، یک بار دیگر داستان آن زن و مرد را بگو تا با هم بشنویم. کند و آهسته بگو تا کند و آهسته بشنویم بگو گیل مرد خواب آغاز کرد زمانی زنی را می شناختم که پیوسته به مردش میگفت. تو تمام خاطرات مشترکمان را از یاد برده ای. تو حتی از آن روزهای خوش سالهای اول هم هیچ خاطره ای نداری زندگی روزمره حافظه تو را تستیح کرده است تو قدرت تخیلت را به قدرت تأمین آتیه تبدیل کرده ای البته عاطیهای که خاطرات خوش مشترکمان در آن کمترین جایی ندارد تو مرا حسف ای حذف و مرد صبورانه و مهربان جواب میداد نه به خدا نه من با خود تو زندگی می کنم نه با خاطرات تو من تو را به اینه همینطور که روبروی من ایستاده ای یا پای شیر آب ظرف می یا برنج را دم می کنی یا سیب زمینی پوست می کنی یا لباس تازت را اندازه می کنی آشقم نه آنطور که آن وقتها بودی من تو را آشقم نه خاطراتت را و تو چون مرا دوست نداری با آن یک مشت خاطره سنگوارهای تک تک آویخته ای. به سرانجام مرد عاشق یک روز مرد در حالی که همسرش را هنوز هم عاشق بود و همسرش با اینکه پا به سن گذاشته بود چهار ماه و چهار ده روز بعد با مرد جوانی عروسی کرد. مرد جوان از همان شب اول نشست پای تصویر نما و غرق در تماشای یک فیلم عاشقانه شد مرد جوان فقط به خاطر چنان رفاهی با زندر میخته بود و البته به خاطر آنکه به تن احتیاج کور داشت. این بار بهتر از بار قبل گفتی. کامل ترش کرده ای. با کلمات بهتری قصت را ساختی. اگر صد بار دیگر بگویی میتوانی آن را به یک قصه بسیار لطیف و انگیز تبدیل کنی. حالا به من بگو ما که هنوز خاطر باز نشده ایم چرا دیگر حتی همان چند کتاب تلطیف کننده روح را نمی خانیم. همان حافظ و مولوی و خیام خودمان را مگر فرصت می کنیم عزیز من ما حتی فرصتی برای ایستادن در صف نان و شیر هم نداریم میدانم، میدانم اما در این معرکه شیر و نان به من بگو که جای عشق کجاست آن جای بسیار بسیار کوچک بینهایت بزرگی که عشق می خواهد کجاست همان جایی که اگر یک نفس خالی بماند خاطره شتابان و سیال آن را پر خواهد کرد کجاست؟ گیل مرد میگوید چیزهایی را که از کف می‌روند و باز نمیگردند حق است که به خاطره تبدیل کنیم. و در حافظ نگه داریم کودکی ها را با آن تنها ماشین کوکی شکسته و آن کنج دنج اتاق مادر بزرگ و پدر بزرگ را با آن بگو مگوهای دائمی که با هم داشتند و دارند آن خانه قدیمی ماه را که عموجان جان و در جایش یک خانه چند طبقه خیلی زشت ساخت آن بازپرسی های کشدار و زندان های انفرادی را و انقلاب را با تمامی شور و حرارتش اما نگذاریم که عشق در حد خاطر حقیر و مصرفی شود ترک عشق کنیم بهتر از آن است که عشق را به یک مشت یاد بیرنگ و بو تبدیل کنیم یادهای بی صدایی که صدا را در ذهن فرسوده خیش و نه در روح به آن میافزاییم تا ریاکاران باور کنیم که هنوز فریادهای دوست داشتن را میشنویم در انقلاب فریاد میکشیم به باور نکردنی ترین صورت ممکن و بلندترین صوت فریاد میکشیم خون بارش آنچه باید بشود میشود شاید اینک نفسی به آسودگی شاید جای عشق